بسم الله الرحمن الرحیم در خداشناسی رسیدیم به یک راه منحصر شد به یک راه چون راه‌های دیگه حالا یا سخت یا نشدنی یا هر که هست اما یه راهش باقی موند و این راه تنها راهی است که من شما باید طی بکنیم و این خداشناسی و رسیدن به معرفت الله از طریق بررسی صفات الهی اولا روش روش عقلی است ثانیاً ببینیم که به کجا می‌رسیم قبل از اینکه ما صفات الهی رو مطرح بکنیم و بحثش رو بیاریم که بگیم این صفات خودما هستند البته دیگه تقسیم بندی هاش تموم شده فقط اسم ببریم و بیام مثلا فصلی توی علم خدا صحبت بکنیم و اینا یک بحث اساسی رو باید مطرح بکنیم اون که آیا اساسا و اصولا برای انسان شناخت مفاهیم صفات حضرت حق امکان پذیره یا امکان پذیر نیست یعنی انسان راهی برای رسیدن به مفاهیم صفات دارد یا ندارد؟ به ذات که محال بود. حالا آیا به صفات هم محال است یا ممکن است؟ اگر ممکن است به چه شکلی؟ این بحث. بحثی که در مقام پاسخ دو گروه شدند. گروه اول کسانی هستند که میگویند ما برای رسیدن به شناخت خداوند میتوانیم از طریق صفات وارد بشویم شو صفات حضرت حق امری قابل شناخت در دستی انسان قرار میگیره نه یه تایفه هستند یه طایف هم هستند که میگن اصلا خداوند رو از طریق صفاتش هم نمیشه شناخت اصلا نمیشه شناخت امکان شناخت حضرت حق نه از راه ذاتش و, از نه, و نه از راه مفاهیم صفاتش اصلا امکان نداره چرا؟ اینا میگن ما بخوایم با ابزار عقل پیش بریم عقل در این زمینه کارکرد نداره ما نمیتونیم بفهمیم مفاهیم چی است تنها چیزی که ما میتونیم راجع به صفات خدا بگیم اینه اجمالا خداوند علی اعلی یه صفاتی داره که در متون دینی به ما رسیده یعنی در قرآن و در روایات اما اینکه اینا به دست ما رسیده اند یک دو اینکه ما فقط میتوانیم بهش ایمان داشته باشیم ما ایمان داریم خدا قادره ما ایمان داریم خدا غنیه ما ایمان داریم خدا عالمه ما ایمان داریم خدا مثلاً خیزموش هاییم مثلاً که غفوره خداوند توا ما همه ایمان داریم اما این که با چه معنه هسته نمیدونیم معنه رو نمیدونیم البته تعبدن بهش ایمان داریم چرا؟ چراشون یه دلیلی که بخوام بیارن اینه؟ میگن ببینید ما صفات رو وقتی میخوایم تفسیر بکنیم یه حالتی است درون ما. ما این رو از اون حالت درونیمون انتزاع میکنیم. مثلا الان وقتی به شما میگن گروسنگی رو تعریف بکنید شما گرستگی رو وقتی میخواید تعریف میکنه میگید یک حالت چیه یک حالت نفسانی است یعنی یه حرکت درونی شماست که در پی نخوردن چندین ساعت غذا ایجاد میشه در علامت قار کردن حالا قار کردن مشترکه ولی مسئله دریافت گروستگی به روح شما برمیگرده به اون درک شما از درونتون برمیگرده اون حالت رو درک میکنید. میگن علم چیه؟ شما یه حالت دانایی در خودت احساس بیکنی یه حالت روشنی در خودت احساس بیکنی میگی علم یک دانستنه حالا یا از خودت اون حالت درونی رو کشف بیکنی؟ یا از شبیه خودت کشف می کنیم مثلا گرستگی رو خب نمیتونی حالت نفسانی طرف مقابلی که بفهمید چیه که ولی مثلا میگه آنه هلا شکرم برو میگه این میگه هم میگه ای من هم اینجوری میشم و میگه همون گرستگیه میگه همون گرستگیه پس ما وقتی میخوایم صفات رو تفسیر کنیم تفسیر صفات در واقع تحلیل حالات درونی خود انسانه علم و قدرت و همه اینها درسته از آنجا که ما یک موجود ممکن الوجود هستیم و ممکن الوجود از ناحیه ی ذاتش دوچار نقصه و صفاتی رو هم که دارد مشروب به نقصه است. چگونه می توانیم دریافت خودمون رو به ذات عدس اله نسبت بدهیم در حالی که خداوند واجب الوجود است تو از هر گونه نقص است ما تحلیل و تفسیر صفات و از حالات درونی خودمون ما یک موجود ممکن الوجود هستیم ممکن الوجود مشروبه به نقصه شاعبه نقص درش وجود داره هم در مرتبه ذاتش هم در مرتبه صفاتش چگونه می توانیم آن معنای یافته شده رو تسری بدهیم به ذاتی که مبرای از هر گونه نقصه که واجب وجوده ما مجوزی نداریم برای تسری بنابراین ما نهایتاً در خودمون میشتموسیم و نمی رو به خدا نسبت بدیم فقط ال... در واقع تعبدا ما ایمان داریم که خداوند واجد یک سری صفات کمالی است مطلق صفات کمالی است اون کمالات چیه اما یه چیزی رو هم بیفهمیم و اون که ما میتوانیم نقص امکانی را خدا سلب بکنیم میگیم آقا خدا جاهل نیست خدا عاجز نیست خدا معدوم نیست ما اینه بفهمونم همه تراشید که بتونیم به خدا حمل بکنیم و بار بکنیم سلب صفات نقص امکانیه اما صفات خودش رو نمیتونیم نمیتونیم عقل هیچ راهی نداره هیچ راهی نداره بعد اینا از آیات قرآن هم برای خودشون چی میارن؟ مثال میارن میگه ما شاهد دارین در قرآن کریم سوره مبارکه انعام آیه سطح صبحانه و تعالی اما یسفون خداون از آنچه او را توصیف می کنید منزه و برتر دو سوره مبارک نهل آیه هفتاد و چهار فلا تزربو لله الامثال برای خدا مثل نزنید یه نمیتونستفادشو بیادید بگید مثلا علمش مثل این طایفه چون عقیده بر این است که عقل توان ندارد برای رسیدن به مفاهیم صفات حضرت هر در این مسیر تعتیل است اسم مسلک شروع مسلک تعتیل و پیروانشونو رو معطله اینا ها خدا عالم همونو میرمشین اینا میگن خدا قادر همونو مدرت شیه اینا میگن خدا مورید همونوی اراده شیه اینا میگن خدا متکلم همونو افراده کلامشی اینا میگن خدا مثلا فرض بفرماید که ازری هست ابدی همونو ندونو ازری یا ابدی شیه اصلا حیاتش شیه نبگونی باریه هست چرا؟ چون اجمالا یه چیزی می دونی اون و خداون از هر گونه نقصی چیه؟ مبرناست اما که حقیقتی چیه نمیدونی این ها به معطله و مبنا شدم یه که مبنای نزاحتیست تنزیهه چرا؟ چون در واقع اینا میخوان خدا را از شوائب به نقص منذبه دارند. چون میخوانی همچین تنزیهی برای خدا ایجاد بکنن میگن اصلا ساختار انسان برای رسیدن به صفات ساخته؟ نشده. تعطیل کلا خیال جراحته این ندارم بهشون خوش میگذره چون هیچ چیزی برای بحث کردن نداره. یا ذات که اصلا نمیشه صفات رو هم که خودشون تعطیلات رفتن دیگه دیگه چه بحثی بکنن این بحث های کلامی به این پرباری فقط در مکتب تجیعه اون هم به برکت امیر المومنی علیه علیه السلام در انتهای بحث یک روایت از آقای خودم میارم ببینید چقدر زیبا بیان کرده این مکتب تنزیه چون بهان خدا را از آنچه که شاعبه نقص و امکانی هست منزه بدانن آنگاه میگن عقل هیچ راهکاری برای رسیدن به دریافت مفاهیم صفات حضرت حق نداره با اون توصیفی که ارز کردن ما اتتر تعدید گروه دوم میگن آقا عقل میرسه چرا نرسه خود اینها به دو دسته تقسیم میشن گروه الف گروه ب نهایت میشن سه گروه طایفه اول نمی نمیرسن که منزه بودن یعنی ما تعطیل بودن اهل تنزیح و تعتیل تا یه میگن میرسه چرا نرسه نه تنها توصیف خداوند است جایز بلکه صفات جسمانی رو به اون نسبت میدن چون اینها دو تا مطلب دارن مطلب اول اینها میگن ما معموریم به ظاهر اونچه که به دست ما رسیده عمل بکنیم اگه قرآن کریم فرموده ید الله فوق عیدی هم همین ظاهرش برای من حجته همین ظاهر چی از ید میفهمم؟ ببینم عرف چی از ید میفهمه؟ ببینم کتاب لغت چی راجبی ید میگه؟ همین میشه فهمم من از ید پس اینا مبنای اولشون این است که ما ملزم هستیم به زواهر اونچه که به دستمون میرسد باطنشو کاری نداریم همچون که ظاهر که رسیده یک دو یه چیزی رو هم اعتقاد دارن و اون اینکه که خیلی خودشونو به درد و سهن چرا انقدر به درد و که بین خالق و مخلوق اختلاف وجود داره پس دو اصل زیر بنایی در حوزه اعتقادشون دارن یک ما معمور به ظواهر هستیم از اون چی که به دستمون میرسه دو هیچ اعتقادی به اختلاف خالق و مخلوق ندارم فلذا در صفات خبریه یعنی اون صفاتی که در قرآن کریم آمده اون صفاتی که در روایات آمده به ظاهر عمل میکنن و اختلاف این هم بین خالق و مخلوق نمیدونن لذا میگن یدالله و, و ایدی هم خدا دست داره بل یداه هم افسوتتان خدا دستش مقلوله نیست و بازی بازه تو دستش بازه چون ما اصلیت چی میفهمیم؟ دست میفهمیم فهمیم که بین خالق و مخلوق تفاوتی وجود نداره چرا اینا خودتون را ازیت اینا میشن اهل حدیثی در اهل سنت اینا همونهای هستن که امروزه کمروند انتحاری به خود و مردم میکنشن وحاوی ها. اینا در عوض اعتقاداتشون دارای یک جمود عقیدتی هستن و در حوزه رفتار هم دارای یک تعصب رفتاری هستن اینا بیگن به اینکه که تیمیه که رئیس در واقع وهابی هاست در قرن هشت میگه احمد ابن هنبر در قرن چهار یه روایت تو کتابش اوورده و اونو که خداوند علیه در شبه های جمعه از ارش با آسومون اول میاد. خب میاد دیگه. چرا میاد؟ چون وجا عرب و کسفن صفا. خدا آمد و ملائک صف در صف خدا سال میدیم. و همونیست که یک مقام نظامی عرشت میده مثلا به پادگان و مثلا فسکو تمام روزی دست در اون در واقع گروه های نظامی خودشون نیستن رسته های نظامی خودشون نیستن و خبردار جا علمش دید جا چرا خودتون آیست دیگه از این حرف هایی که اگر بخواهیم بزنیم که باید بزنیم که شما بشناسید که مخالفینتون کیا هستند که اونایی که سقیفه رو ساختند چه برای سر این جامعه آوردن تا عبد و لعبد می سوزن مردم در جهالت خودشون چرا؟ چون در خانه علی بسته شد و در خانه ابو باز شد ابو یهودی تازه مسلمان شده در مسلک خودش چیشی بود که حالا تازه اینجا اومده به خود باشه اینها چون عبایی ندارن از نسبت دادن صفات مشروبه به نقص به ذات عقدس الهی و ذات عقدس اله را شبیه سایر صفات انسانی و امکانی میدونن بهشون میگن مشبهه یا اهل تجسیب برای خود جسم قائلن قبلا گفتیم دو بحثای خدا شناسه گفتیم اون بحث صفات عزد در بحثای خدایشناسی گفتیم که اینا میگن خدا تا صورت داره یا یه صورت نوجوان 14-15 سال از موهای مجعد فری هنوم آسانش در نیومده نیمده من این فرما فرمای خب اون خدایی واقعا چه کیفی ده یه داشته نه یه پیر جا افتاده یه مثلا فضل کنم موهای جوگندومی اصایی دستشو با مرکبش از عرش میاد از بوزو تو که آسمون اول اساسو میشه خونه مردم کسی حاجت نمیخواد ما حاجت میدیم، کسی مکفرت نمیخواد ما مغفرت میدیم، خب ما هم حاجت میخوایم هم مغفرت میخوایم هم توبه داریم اما نه به اون خدای که شما میگه ما به خدایی که علی میگه بهش اعتقاد داریم این خدایی که شما تصویر بکنید به اندازه یه دست جعفری ارزش نداره خب میگن دیگه کاشم ببشه آیاتی که اشاره میکنن و خوندم دیگه و جا عرب بکن و ملکو صفن 22 فجر در روز قیامت پروردگارتون میآید آید و ملکه در حالی که در صفوف و مرتب قرار دارم می آید. خب سالی که نبیبینید و این معلومه داره چینید و جا وسای رو که براتون کردن معلوم که اینجا اگر شما یک کلمه رو محضوف نداشته باشی اصلا معنا به هم میخورید اگر آدم آمین که ادبیات و ادبیات عرب رو یک دو سال یک رو باشه میفهمه. به آم من اگر یه کلاس رو می نام ادبیات و بعد یه کلاس گشته رو تدبر به خاطر اینا پیوسته هم هستن. شما باید در واقع ادبیات یاد بگیرید که چرا جا عرب اینجا باید یک کلمه محذوف باشه. شما بخواهم به شما دلالت سیاخیه یاد بدن. این تو ادبیات به یاد بدن. جای یاد نمیدن. از چهار سال زحمت بکشید یک عمد بهره ببرید و بهره در کمال ببرید به تکامل برسید اونجا اینا رو بهتون یاد بیدن در سور موارد فتح آیه دهید الله فوق عیدی هم دست خدا بارا بودرست خوانی که معلومه که ید کنایه از تسلطه چون ما دلالت داریم دلالت ای داریم الکنایه تو ابلغ منال تصریح، اینا قوائده. بلد باشه پس این آیون مسلکشون مسلک تشبیهه چون دو تا اصل دارم میگه ما معمور هستیم زواهر قرآن در حق ما زواهر متون در حق ما حجته حالا متون که دارم این از قرآن میشد و روایات ظاهرش دیشت و بعد ما قائل نیستیم که بین خالق و مخلوق فرقی وجود داره لذا؟ علم در من هرچه هست به همون معنی در خداست. قدرت در من به هر معنی هست در همون معنی به خداست. اراده در هر معنی که بر من وجود دارد در خدا هم وجود دارد. و کلام و همین حرف که وجود دارد که میگن. این مستق تشبیه مشبهه. پیروانش میگن مشبهه. اینا اولین طایفه یه هستن که میگن ما صفات خدا رو میشناسیم دومین تایفه که حالت اعتدالی دارن اینها میگن آقا میتوان خدا را از طریق صفاتش شناخت پس با مذهب تعطیل مخالفن و میفرمایند این شناخت به این معنا نیست که صفات خداوند دقیقا و همان معنی باشد که در مورد دیگران بکان بینند پس مخالف با مذهب تشبیه هم هستند نه مذهب تفریتی تنزیه را قبول دارن که میگن اصلا راه وجود ندارن و نه مذهب افراتی تشبیه را قبول دارن که میگن نه تنها میتوان رسید بلکه همون چی انسان هست با تمام نقص و امکانش در ذات در سلام هست این دیگه خیلی عجب غریبه اینا اعتدال دارن معلوم میشه جاهله ما مفرتون او مفرد یا الافراد یا هل و حد وسط رو است. ما نبا تجسین کار داریم تشبیه کار داریم و نه با تنزیه کار داریم و تعتید ولی چند تا چیز رو میگیم یک قبل از اینکه بخوایم صفات رو تفسیر بکنم من دیگه در سرر نیستم که نظریه اینا این رو نقد بکنم همین که حرف خودمون رو اثبات بکنیم نظریه اینا چی شده نقد شده دیگه همین که حرف خودمون رو اثبات بکنیم یک شیوه جدید برای اثبات دیگه لازم نیست حرف اونها رو نقد بکنیم حرف خودمون اثبات میکنیم در انتها ممکن است که مثلاً یک نکته ای رو براشون بیان بکنیم ولی حالا لازم نیست ما چند تا مطلب رو میگیم یک در تبین و تفسیر صفات الهی اولا عقیده ما سوری مقارکه حج آیه 74 ما قدر الله حق قدره قدر خدا را چنان که در خور اوست نشناختن ما کماه و حقه خدا را نمیش دازید. دلیل دلیل دو تا مطلب یک سوره مبارک شورا آیه یازده لگسه که مثلی شایی اصلا نظیر نداره لگسه که مثلهی اصلا نظیر نداره مثل نداره و دست سور مبارکی تاها صد و ده زب ماست هم دست ما کوتاه هم خورما بر نخی هم لیسک که مثل هی شیع و هم اینکه که تاها صد و ده یه علام آبای نعیدی هم و ما خلفهم هم اون آنچرا که در پشت سر و در پس سر دارید بیدانه ولا یهیتون بهی علما ولی شما به او احاطه ندارید هم دست ما کوتاه و هم خورما برنخید دو تا ضعف وجود داره این است که حق مطلب ادا نمیشه آقای من این بیان نورانی و مبارکشون کردم؟ کیف میکنه این حرفا میشنوه امیر علی السلام می‌فهمید قال علی علی السلام لم یطلع العقول ال تهدید صفته خردها را بر چگونگی صفات خود آگاه نکرده عرفنی نفسک تو باید بشاس حالا صفاتش رو به من اون که شایسته و بایسته هست چکار کرده منو آگاه نکرده ولی در ها ولم یهجوبها علا واجب معرفته ولی آنها را از مقدار لازم معرفت خود نیز محجوب نساخته یعنی ما اجمالاً به واسطه عقل یه چیزی رو به دست می آوریم. اما اینکه این همه آینه تمام نمای حضرت حق نه این چرا که ما به دست نمی نمیتواند منعکس کننده همه حقیقت خدا باشد چون نامحدود و محدود ما ابزارمون ابزار درست درمونی نیست اگر در بسیاری از مطالب بیانات نورانی اهل بیت سلام الله علیهم اجبای نباشد نمیلسیم. اصلا نمی رسیم اصلا نمی رسیم بنابراین دکته اساسی در شناخته حضرت حق از طریق صفات اینه که عقل میرسد اما نبا اونجوری که شایسته حضرت حق است یه قدر واجبی وجود دارد که اون قدر واجب رو هم امکانش هست که بشناسیم و هم لازم هست که بشناسیم عبارت چقدر زیباست ولم یهجوبه ها واجب معرفته یعنی یه مقداری هست اما اون مقدار اینجوریست که شد شد دشد نشد بلکه واجب است معرفت پیدا کردن به اون مقدار وقت اونم بعد نگفته آب دریا را اگر نتسوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید باید چشید یه اتشی بشه دیگه چون تنها راه رسیدن ما به خدا همی صفاته فقط ما نمیرسیم نه پیغمبرم نمیرسه فرابط ما عرفنا که حقا نمیرسیم که شایسته تو هست من تو رو نشتاختم من اینکه که اول ما خلق الله هستم یک من اینکه در عالم نور هستم دو من اینکه که کنت و نبیین و آدم و بینتین و ما هستم من و مقام نبوت داشتم و آدم هنوز در پروسه این بود که خلقش کنیم یا نه من این خبر داشتم من صاحب خبر بودم نبی من صاحب خبر بودم من اصرار رو می دونستم و بنده خدا آدم که به عصب ظاهر جد ماست هنوز تصمیمیم که بیاد یا نه عبتی خداوند تردیده در تصمیم نداره این بیان بنده است خدا میدونه منطور زمانش هم نرسیده که بیاد برابر ما بر مسلک اعتدال عمل میکنیم و مثل مسلک اعتدال این است که با رویه عقل جلو میریم و با رویه عقل جلو میریم می یه خود میشه؟ سخت میشه و در اینه ها ما تلاش بکنیم که انشالله بیاریمش باییم ما باقاسیم عدل رو بگیم چی شد؟نا رو گفتیم؟ میخوام برسیم به عدل اما قبل از که شما رو بفهمیم با چند تا چیزی بفهمیم؟ یک ما راجع علم خدا و صحبت کنیم ما راجع قدرت و اختیار با صحبت بکنیم راجب اراده و مشیت با صحبت بکنیم راجب حیات ازلی و ابدی باید چکار بکنیم؟ صحبت بکنم عذر کنم حضور انورتون که راجع به کلام الهی صحبتمون می‌کرد خدا متکلمه بنا چند تا صفت بله پنج تا همه از صفات ذاتی خدا متکلمه خدا موریده خدا قادر خدا عالمه و خدا حی این پنج تا خب خدا حی یعنی چی این که میگید ازالیستو عبدی یعنی چینا رو اگر ندونید که اصلا خب بگرم اگر نمیدونی. که نمیدونیم دارم که نمیدونید پس قربت برم چی میدونی؟ همین که چرا نمیدی چرا نمیدی وقت اینا که متوجه بشین یک صفت در خدا هست و اون چیه؟ صفت حکمت مترده برای حکمت حضرت حق تقسیمات منتظر از این تقسیمات قرهای مردمه خدا بر اساس حکمتش تقسیم میکنه درسته؟ به یکی کم میده به یکی زیاد میده به نمیده بعد تو قر میزنی چرا؟ این چه خدای عادلی از اینجا مطمئن میشودی که به حکمت خدا برمیگرده شما تا بحث علم خدا رو ندونی تا بحث اراده خدا رو ندونی تا بحث قدرت خدا رو ندونی چجوری با رجوع حکمت خدا حرف بزنیم پس شیوه بحث من یک شیوه منطقیست در بحث ما تا این چل خسلت رو نداریم به اون بحث اصلیتون تو نمیلسیم آقا مریض کرده یک کسی رو ما در مادرزاد مثلا آ این چه چیزیه یا طرف نابیناست این ظلم خب نیستیه این با عدل خدا سازگان است اصلا میگویم عدل خدا چیه چرا شما تعریف خودتون رو از عدل به خدا تحمیل میکنیم چرا چه برشون بحث میکنه دیگه آها کمبود وجود داره کمبودها به خدا نسبت داده میشه این عدل به حکمت خدا برمیگرده ولی تو اونها حل نشه حکمت حل نمیشه این دو گفتم که بدونین حالا حالا ها به عدل نمیرسیم حالا حالا ها نمیرسیم این دقیل این ولی سال نمیرسیم چون که تا اونا رو ندونیم نمیم فهمیم شیوه تراحی بحث من یه شیوه منطقی است که باید اونا معلوم بشه إن شاء الله بتوانیم اون رو حلش بکنیم الحمدللله حرب الالم اللهم <تصفيق> صلی علیه و